بخش سوم فعال دانشجویی کاسترو در 19 سالگی برای تحصیل در رشته حقوق وارد دانشگاه هاوانا شد مصمم بود در سیاست پیشرفت کند هدف اصلی او ایجاد وچه قوی و دست و پا کردن شهرت فردی برای خود بود و هاوانا برای این هدف مکانی مناسب محسوب میشد. دانشگاه هاوانا آموزشگاه کسانی بود که میخواستند وارد عرصه سیاست شوند. تیکردن فاصله هاوانا، پایتخت زیبا و قدیمی کوبا تا خانه کاسترو با قطار خیلی طول می‌کشید. ساختمان شیک اسپانیایی در طول بلوارهای های عریض هاوانا ردیف شده بود و شهر سرزنده و پر از امریکاییان ثروتمند بود. کاسترو که در فضای دانشگاه فردی بارز بود، غالباً به ترزی متفاوت با دیگر دانشجویان لباس میپوشید وقتی آنها در هوای گرم و مرتوب پیراهن ورزشی به تن میکردند او پیراهن سیاه چروکیده میپوشید و کروات میبست غالباً او را میدیدند که با های مدل جدید در آن حوادی رانندگی میکند میخواست دیگران را تحت تأثیر قرار دهد اما بیشتر دانشجویان از خودنمایی او منزجر بودند در سال 1945 که کاسترو وارد دانشگاه شد، کوبا رسما کشوری دموکراتیک به حساب میآمد. پرزیدنت رامانگر گراسان مارتین یک سال قبل در انتخاباتی آزاد برگزیده شده بود. با وجود این، تردید نیست که زندگی در کوبا با آرامش همراه نبود. گراو برای ارعاب و آزار و حتی قتل دشمنان سیاسی خود به کاران که آنان را گروه‌های زربت می‌نامید، پول می‌پرداخت. به این طبعکاران در ازای حمایتانها آنها مناسب حکومتی می دادند. در خیابان های و محبت دانشگاه غالبا دارادسته های سیاسی به نزا با یکدیگر می کاسترو می‌کوشید از دارادسته های سیاسی دانشگاه از جمله دو گروه بسیار قدرتمند جنبش انقلابی سوسیالیستی MSR و اتحادیه انقلابی شورشی UIR دوری کند این دو گروه دشمنان سرسخت یکدیگر و هر دو خواستار قدرت و نفوذ بودند کاسترو برای آنکه جان سالم بدربرد در می بایست یا به یکی از این دو گروه می پیوست یا به نحوی با هر دو کنار می آمد. استقلال او مدتی کارگر افتاد. اما هنگامی که به وضوح ضد فساد حکومت سخن گفت دچار دردسر شد ماموران دولت و ام به او دستور دادند سخن گفتن بر سر دولت را کنار بگذارد یا دانشگاه را برای همیشه ترک کند کاس را دوست نداشت به کاری وادارش کنند و تهدید دولت او را وحشت زده و آشفته کرد در مدتی که در ساحل نزدیک هاوانا تنها بود به افکار خود سر و سامان داد و بازگشت نمیخواست تسلیم شود نمیخواست ایدعالهای خود را فدا کند پس برای دفاع از خود سلاحی تهیه کرد برای محافظت از خود وقتی بیرون می رفت کاری می کرد که در میان دوستان و دیگر دانشجویان باشد در سال دوم دانشگاه کاسترو جذب حزب ارتودکس شد که هدف آن برملا کردن فساد درون حکومت و اصلاحات بود در سیاست چنان فعال شد که حتی در امتحاناتش به آن اندازه فعال نبود درگیر چند واقعی خشونت آمیز شد و به مرد وحشی شارت یافت. معلوم بود چه آمالی در سر دارد می خواست رهبر شود یکی از همقطارانش به یاد میآورد کاسرو هیچ وقت نمی توانست با دیگران کار کند یا در جایگاه زیردست احساس راحتی کند کاسرو در تابستان 1947 به گروهی از انقلابیون پیوست که می‌خواستند حکومت ظالمانه رافایل لونی داستریخ و مولینا را در جمهوری دومینیکن ساقت کنند این انقلابیون که بسیاری از آنان دانشجویان کالج بودند، یک ماه و نیم در جزیره کوچکی دور از ساحل کوبا آموزش دیده بودند. آنها عازم حمله به جمهوری دومینیکم بودند که حکومت کوبا جلوی این حمله را گرفت و دستور داد کشتی آنها به کوبا بازگردد. در راه بازگشت به کوبا، کاسرو برای اینکه اسیر ارتش کوبا نشود، از کشتی به دریا برید و دوازده کیلومتر در آبهای پر از کوسه با مسلسلی روی سر شنا کرد تا به ساحل رسید. اما این تجربه از فعالیت کاس کاسرو کم نکرد و چندان طول نکشید که به مخالفتی تازه پرداخت. در سال 1948 با دیگر دانشجویان به بوگوتا در کلمبیا رفت تا به تشکیل سازمان کشورهای آمریکایی OAS که سازمان ملل از آن حمایت می‌کرد اعتراض کند. به نظر کاسرو تشکیل سازمان کشورهای آمریکایی فقط راه دیگری برای مداخلی ایالات متحده در رویدادهای آمریکای لاتین بود. کاسرو به محض رسیدن به کولومبیا تصمیم گرفت با یکی از رهبران کلمبیایی معروف اما جنجالی به نام خرخیلی سرگایتان ملاقات کند و از او بخواهد با این شورش ها همراه شود. اما درست قبل از ملاقات آنها گایتان بیرون دفتر کارش تیر خورد و کشته شد. شورش های پس از مرگ او فوران خشونت را در پی داشت تقریبا یک سوم شهر در آتش سوخت و پنج هزار نفر کشته شدند. کاسرو درست در بحبه این حوادث در خیابان ها می گشت و جزوهای زده آمریکایی پخش می کرد. کاسروی بیست و دو ساله فعالی سیاسی بود که ضد ایالات متحده فعالیت می کرد. مقامات کلمبیا خیلی زود دستگیری شرکت کنندگان در شورش را آغاز کردند. با کاسترو و دیگر دانشجویان به این نتیجه رسیدند که هنگام بازگشت به کوبا رسیده است. کاسترو با آنکه آماده بازگشت به دانشگاه بود، اما آمادگی دست کشیدن از فعالیت سیاسی را نداشت. در سپتامبر سال 1948، حرکتی اعتراضی علیه افزایش کرایه اتوبوس سازماندهی کرد. اعتراض موثر واقع شد و شرکت اتوبوسرانی کرایه ها را کاهش داد. در 19م اکتبر سال 1948 که کاسترو سال سوم دانشگاه را میگذراند با دانشجوی به نام میرتا دیاس بالارت ازدواج کرد. میرتای زیبای ریز جسه و سیاه موی از خانواده معتبر و پدرش شهردار شهر بانس در ایالت اورینته بود. او موافق ازدواج دخترش با این جوان سیاست باز نبود. هرچند کاسترو بر ضد ثروت و تجمل داده سخن می داد سخن میداد، او و میرتا جشن عروسی مفصلی برگزار کردند و از خانواده‌ها و دوستان خانوادگی ثروتمند خود مبالغی را به عنوان هدیه دریافت داشتند حتی از مردی که کاسرو بعدها او را از قدرت ساقط کرد یعنی فلخنسیو باتیستا هدیه هزار دلاری گرفتند این زوج پس از گذراندن ماه اصل در ایالات متحده جایی که کاسرو پس از ماهها برای اولین بار احساس امنیت می‌کرد به دانشگاه بازگشتند سال بعد را در هتلی کوچک در هاوانا زندگی کردند که از محبت دانشگاه یک بلوک فاصله داشت پدر کاسترو برای آنها پول می فرستاد تا به تأمین حزینه زندگیشان کمک کند با این حال آنقدر پول نداشتند که آسوده زندگی کنند کاسترو به جای آنکه برای کسب درآمد بیشتر کار کند امدهی وقت خود را در دفتر مرکزی حزب ارتودکس می گذارند که حال یکی از رهبران آن شده بود در سپتامبر سال 1949 میرتا پسری به دنیا آورد. فلیکس فیدل کاسرو دیاس او و فیدل پسر را فیدل تو نامیدند. پس از چند ماه این خانواده توانست به آپارتمان کوچکی نقل مکان کند اما هنوز از نظر مالی به پدر فیدل وابسته بودند. فیدل سرش گرم سیاست بود و بعد از کلاس سر کار نمیرفت او و میرتا مجبور بودند به دقت مراقب مخارج خود باشند کاسترو در بهار سال 1950 یک دور مطالعه فشرده را آغاز کرد تا بتواند در آن سال از مدرسه حقوق فارغ التحصیل شود حافظه عالی خود را به کار گرفت در کلاس ها حاضر نشد و در خانه بی وقفه به مطالعه پرداخت می توانست امتحانات دو سال را تنها در 6 ماه با موفقیت تمام بگذراند. پایز آن سال کاسترو با سه مدرک عالی فارغ تحصیل شد. دکترای حقوق، دکترای علوم اجتماعی و دکترای حقوق سیاسی. سالهایی که کاسترو در دانشگاه گذراند او را برای زندگی سیاسی کوبا آماده کرد. او درسهای دشوار مبارزات سیاسی، سخنرانی عمومی و مواظبت از خود را آموخته بود. کاسترو دفتر وکالت باز کرد. و تمام توجه خود را معطوف هایی کرد که به نفع دستان بود. در این حین زندگی خانوادگی برای میرتا روز به روز سختتر میشد. کسب درآمد برای فیدل اهمیت نداشت و غالباً پولهایش را به مردم نیازمند یا دوستان میبخشید. در حالی که خانواده خود او در مسیقه بود. گاهی وقتها شیر برای بچه یا غذا برای خوردن کم بود. روزی یکی از دوستان میرتا را در حالی یافت که روی زمین نشسته و فیدلیتو را در آغوش گرفته و میگرید هیچ اسباب و اساسی در خانه دیده نمیشد حتی گهواری برای فیدلیتو فیدل پرداخت اقتصاد لوازم خانه را فراموش کرده بود کاسرو به ندرت وقت خود را با خانوادهاش میگذاراند و تقریبا تمام اوقات خود را با اشتیاق صرف سیاست میکرد او که رهبر حزب ارتودکس بود تصمیم گرفت نامزد وکالت کنگره کوبا شود مبارزه او بسیار موفقیت آمیز بود و مردم اطمینان داشتن کاسرو برنده انتخابات خواهد بود. همچنین انتظار می رفت حزب کاسرو با کاندیدای ریاست جمهوری خود روبرتو اگرامونته به قدرت برسد. نامزد دیگر فلخنسی باتیستا رئیس جمهور پیشین کوبا بود که در فلوریدا زندگی می کرد و در آن زمان برای شرکت در دور دیگر انتخابات به کوبا بازگشته بود. سنجی ها نشان میداد باتیستا شانس اندکی برای پیروزی دارد. آنگاه حادثه عجیبی روی داد. صبح روز دهم ده مارس سال 1952، ساعت 2.45 دقیقه صبح، سرکله باتیستا در دفتر ستاد ارتش در کمپ کولومبیا پیدا شد. افسران وفادار به باتیستا قبلا کنترل کمپ را در دست گرفته بودند. باتیستا پس از تلفن به دیگر رهبران نظامی پشتیبانی تمام ارتش را به دست آورد. او کنترل سراسر کشور را در دست گرفته بود. دیگر انتخاباتی در کار نبود. کودتای باتیستا موفقیت آمیز بود. امیدهای کاسرو برای وکالت کنگره بر باد رفت. او و دیگران از دست باتیستا خشمگین بودند. کاسرو انتخابات و انقلاب مسالمت آمیز را کنار نهاد و به جمعیتی پیوست که به انقلاب مسلحانه معتقد بود. تصمیم گرفت از زور برای تحقق بخشیدن به هدف خود استفاده کند سرنگون ساختن باتیستا و نجات کوبا